به جان او که گرم دست به جان بودی کمین پیشکش بندگانشان بودی به گفتمی که بها چیست خاک پایش را اگر حیات گرانوای جاودان بودی به بندگی قدش سرد معترف گشتی گرش چسوسن آزاد ده زبان بودی به خواب نیز نمی بینمش چه جای به سال چون این نبود و ندیدیم باریان بودی اگر دلم نشدی پای بند تره او کیش قرار در این تیر خاکدان بودی به رخچ و مهر فلک بی نزیر است به دل دریغ که یک ذره مهربان بودی در آمدی ز درم کاشکی چولم ای نور که بر دو دیده ما حکم او روان بودی. ز پرد ناله حافظ برون که افتادی اگر نه همدم مرغان صبحان بودی.